بسم <سؤال> الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين <سؤال> الصلاة والسلام على الشرق الأنبياء والسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد ما فصل مثل <تنى> حايل <حقي> غنديم من جا <جو> از بيات امالد ابن عبي داود تدربتو <كتال> از <بفعز> احيلي سلف <السلاح> قلنات <مترو> رو ام الابيات رو سرده بوداً تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تفبت عيّاً لعلّك تفلحو تآخرون عبارة يوسف بيتك مش إنجا مشارك داري امروز با كتابي هسهيم از كتاب هيد در حجم شكوشي كبريكم نسيحات هاي بزرگي هاز از امام بزرگي از امي اهل سنة امام احمد بن الحنبال رحمه الله تعالى اسباب نسيحات این مات رو نوشتن وخيل از امي ومدن این متران نفت کردن در کتابشون این نصیحت نامش اسمش رو بذاشته اصول السنة اصول السنة امام ابو در کتاب طبقات حنابله تسمت از این متران میاره امام لالکایی در کتاب اصول اعتقاد اهل سنت و جماعت این متران میاره و دیگران از اینه که اومدن عقیده سلف را با احسانی ده. اینجا منت گفتم حالت نصیحت را داره اصولی که در سنت اومده تیتروار برامون گفته اینجا نه کرده اون نصیحت هایی که رسولا صلی الله علیه و سلم داشتن اومده در این منت رو ورده زد کرده این من دیگری مثل لالتایی مثل ابن خوزیمه مثل ابن مندل بعد دیگران مثل ابو نعیم اسفحانی خیلی زیاد ما داریم از ستابه هایی که نوشته شده با ذکر آسانی همین چیزهایی به شما اینجا دارید عیمه علی سنت اومده مثلا لالتایی اهل تبرستان هست میاد که اصولش بر به فرس به فارس ایران میاد پنجل کتاب می نویسه فقط در ذکر آثاری که درباره باره عقیده طلب مدنی صحابه چی گفتن تابعین چی گفتن رسول اللہ سلام خودش چی گفته این عقیده ما علی سنته این طوری ثابت میشه. این طوری نیست که من در باشه هر کسی بیاد داره خودشه چیزی بگه و نقد بکنه و متن قران بپذیریم اینطوری نیست عقیده اهل سنت از, از رسول الله صلی الله علیه و سلام از صحابه از صحابه از اونها گرفته میشه مقعدی که تو برداشتیم به خود متن اصول سنت ما دیگه نیاز داریم که درباره این امام احمد بن حنبل صحبت بیاریم این امام کی بود چه کسی بود و علما در باره چی گفتن و چه کارهایی کرده چه زحماتی کشیده چه زحماتی ارائه داده چه خدماتی ارائه داده اینا رو ما فقط خلاصه بار تیتبار میدیم نمیدونیم حق این امام رو در این جلسه عدا بکنیم و حق به برگردن ما داره اینجا بخوام ادا بکنیم حقی این امام در برگردن ما خیلی زیاده خیلی زحمت کشیدن امام احمد, دست، امام احمد بن حنبل در سال 64 هجری فبری به دنیا میان در سن 16 سالگی با پاهای خودش قدم خدم بر میداره تا بر یمن اهل مرگ، پدرش در مرگ ایران زندگی می کرده او را بر میداره میره بغداد بعد خودش از بغداد، از عراق روی پاهای خودش نسواره, نسواره قدم قدم بر سطور، نسواره بر از قدم خدم بر میداره تا برسه پیش عبدالغزاق صنعانی صاحب کتاب المسنم فقط بخاطر این اینکه احادیثی که عبدالغزاق صنعانی یمانی شنیده فقط بشنبه و نقل بکنه برای خودش بینیزه قلم و دفتر برای خودش بر میداره دو سال فقط نشینه شاگردی امام عبدالغزاق صنعانی میکنه این ابتدایه حدم هایی بود که امام محمد ابن در راه طلب علم بردی داره علا قصده های امام محمد ابن در یمن اون پول مالی که بهش می دادن و برنمی داشت و زهدش و برهش اما به گوشش ما نیاز نداریم که از اونها از زخم به میان بیانیم هرچند که شاید به یک اشاره به نکاتی داشته باشیم از اون زهدشون یا برهشون بعد از عبدالعزق قسنانی با امام شافعی ملاقات میکنه سنی خیلی آنچنانی نداشت امام شافعی رحمه الله دعوتش میکنه که بیاد به مصد همراهش امتنان میبرسه میگه نمیتونم بیام، چون برای خودش برنامه داشته از این بره این شهر اون شهر از علمای حدیث طلب قلب بکنه. امام احمد با اون سن نکمش با وجودی که شاقید امام شافره رحمه الله به حساب میومد. امام شافره رحمه الله قد این شخص جاون رمید میدونست. امام شافره يا ابا عبدالله اذا صح الحديث عندك فاعلمني اجاب حديث السهی نازده فا اذا شد من بقو فاعلمني به اذهب لليلي حجازیا حجازیا كان او شاميا او عراقيا او يمنيا احادیث از شام و یمن و عرب، اون جاهایی که امام شفیع رحمت الله خودش نرفت، احادیثی که شنیده یا رفته و نشنیده، امام شفیع رحمه الله تلاش میکنه از امام احمد بن که احادیثی که شنیده براش و سعیه برایش بگو و بازگو بکنه. این امام احمد بن حنبل. این جایگاهش نزد ائمه ایمه حدیث با وجود که شاگرد امام شافیه امام شافعی در قصد تقاضای نقل حدیث ازش میکنه روزی هارون رشید در میکنه از امام شافیه رحمه الله که بیاد قاضی بشه دریامن از طرف حکومت بره اونجا تضابت بکنه امام شافیه رحمه الله وقتی که این حرف را به أحمد بن حمد رحمه الله نرح أتجي نرح أتجي كتشرا انتنين فيش نهادير أحمد بن حمد رحمه الله بأحمد بن حمد رحمه الله يقولوني يكطلب علم يقول تقبل قضاء اليمن يا أحمد فقال أحمد إنما أختلف إليك لطلب العلم المزهد في الدنيا من دبل علم مدام ندبل الدنيا علمی که ما در دنیا دور می‌کنه و تأمرا ان اهلی قضا من امنی کلی قیام درد قضا و بیم برای قضاوت مردم برای دنیا می‌شینم ولولا علم ما بعد اليوم اگر علم ندوز اگر بخاطر علم ند دیگه بعدی با هم صحبت نمی‌کردم اینو محمد دکی میگه امام شافعی رحمه الله بعد میگه امام شافعی شر می‌کنه ازش بعد واش میگه دوباره بهش نمیده دو. ما نکنه هل إن جاء شهادة قضاء إمام شابعي بل إمامة وإمامة الحزر ومحمد نتهم إمام شابعي قد إمام شابعي رحمه الله لي خرجت من العراق فما تركت رجلا أفضل ولا أعلم ولا أورع ولا أتقى من أحمد بن حمد يبأت عراق خارج لنبا وفزل ترسل أحمد بن حنبال دوناتار عالمتار أوراعتار متقفات أسنين تسي ديره انجرها نجال يعني متقفتري شخص عالمتري شخصي كي هنجا بود كي بود أحمد بن حنبال در كجا؟ در عراق كمقر علم بود مقر طابعين و طابع طابعين بود يعني بأنوان قبيلترين طالب علم قبيلترين عالم متقفتري شخصي كي ما مشابه ما مشابه بأم مكانتش بأم منزلتش میگه امام احمد این جایگاهی داره خب بگه یک عالم وقتی اینچنین گواهی میده اینکه ما بدونیم که دیگه نزد ما بقیه دیگه چیه نزد الله غل نزد دیگر ائمه امام شافعی مکانتش کم نبود جایگاهش کم نبود امام شافعی رحمه الله خصوصا امام شافعی وقتی که فرمی کنه سال 24 هجه کمری امام احمد سازه چه سازن داشتی؟ یعنی در سن جوانیش بود که با اما مشافقی رحمه الله ملاقات کرده هنوز امام محمد برای تحدیث و برای نقل علمش برای دیگران هنوز امام محمد ننشسته بود کفصی ولی خوش نگذاشته به جایی که تدریس بکنه خود امام محمد رحمه الله تا چل سالی بی ازدواج نمیکنه فقط به خاطر اینکه طلب علم بکنه فقط به خاطر طلب علم که از شهری به دیگر. فخذ بلع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بني لسبب يشنبي قراءة أئمين غيرت أمام شافير رحمه الله زيادة مكانة أمام أحمد بن حنبل مثل يحيى بن معين مثل علي بن مديني مثل أبو زرعي رازي يحيى بن معين كان في أحمد بن حنبل خصار ما رأيته في عالم قط كان محددا وكان حافظا وكان زاهدا وكان عاقلا می‌گفت صفلتای در امام محمد دیدم که در در خیلی از کلام این ها را ندیدم مثل حفظش مثل اخلیش مثل زهدش صفلت‌های والای بر خدا بود امام محمد بن احمد امام ابوزرعه رضی الله عنه گفت اصحابنا اسود الراس افقه من کسی نگم که موهاش مثل امام محمد سیاه باشه ولی فخیر باشه یعنی به اون سن پیری ننسیده باشه ولی شخص فرقی و تماموند فرقی باشه بعضی یا کسانی که خداوند مرز در قلبشون گذاشته تریزن مرز شبهه آران مرز شبهه شبهات در قلبشون تاریکی گذاشته و سراسر قلبشون پر از شبهات شده شکلی نسبت به این امام دارم که شکلشون خیلی عجیبه نیازی نیست که ما بخوام اینجا یادی از اون حقودان بکنیم یاد از اون بکنیم که قصد و غرض داشتن نسبت به ای این, داشت. نم این امام یکی میگه محمد احمد فقیه نبود یکی میگه این تأثیر عربیت داشت یکی میگه نمیدونم این امام محمد خودش حدیث را مینوش خودش حالیش نمیدود حالیش نبود هر کسی برای خودش چیزی میه. یک داستانی برای خودش می سرایه. یکی میگه نمیدن این درباری بود سبحان الله تمام احمد خودم درباری او را قبول کرد در کدام دربار نشسته بود در اون درباری که توی زندانش کرده بودن شلاقش می زدن این درباری بود کسی که زندان شده بود سه سال زندان میشه و شلاق میخوره میگه این شلاقهایی که بر کمره ما محمد وارد میشد میگه در برسر کوهیم این شبلاق آباد میشد بیر اون که کوه شده شد و لفت شده بود از بس که شبلاق میخورد پشت کمرش کامل کامل خون میومد کمرش پر از گوشه های مرده شده بود طبیب روز رو وردن گوشتن که امام محمد اصلا نمیتونه خواب و قرار نداره گوشت بدنش کاملا مرده نمیتونه تن به پشتش بخوابه طبیب رو وردن گوشتن چه کار بکنیم این قد شبلاق خورده کل گوشت های بدنش جمع شده گوشش دیگه گوش نیست هیچ خونی توش نیست بعد اون طبیب میاد میگه باید این ها رو ببریم جدا بکنیم تا این که امام احمد آروم بگیره چون گوشت بدنش فاسد شده بود از بس شلاق پرده بود دیگه اون طبیب اومد که نمیتونست با تعجب بیاد برداره اون گوشتا رو ببره گاز میگیره از اون لخته گوشتی که گوشت روی کمرش فاسد شده بود با دندون خودش اون گشت ها رو میکرد تا اینکه ما محمد آروم بگیره و اون بدنش بخواد یکم آرامش بگیره تا بتونه ما محمد بخوابه. خواب و قرار نداشت. از دردی که میانی از اون سکنچوالی که دیده دا بود درون دربار داد میان میگر، ما محمد درباری بود. چرا؟ چون میگفت بر عليه فکم خروج نکنید. اسمع اسمع واقع. وعین ضرب و آخدماله. این حدیث رو میگف. و مجبور نبود خروج بر عليه معمور رو بکردن نظر میگف نه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته حتی در کتاب بخوری حاکم بیاد مال تو بردار حتی خروج نداری. این احمد بود اسم این ما بودش اصول و سنه. یعنی چه و یعنی اصولی که در سنت اومده و ما را از شهوات و شبهات تمیز میده. سنت وقتی گفته میشه اصل سنت هم چیزی که از رسول صل الله صلی الله علیه و سلم برای شده و بارش شده برای ما من رجل میگه میگه وقتی که فرقهای های مختلفی اومدن از متکلبین از اشائره محترده جهمیه با دیگه فرقه ها وقتی که فرقهای های مختلفی اومدن مخالفت کردن با سنت رسلسلتن در مسائل اعتقالی اعیمه اومدن اسم کتاباشونو گداشت از سنت یا بابی یا کتابی تو کتابشون ابو آبود غیر مسانید بابی یا کتابی میان تو ذهن کتابشون میگن کتاب و سنه منظور مسائل اعتقادی هست که کسانی مدام با شبهات احادیث رسول خدا رد می‌کنن بعد میان ائمه اون احادیث رو جماوری در این باب در باب سنه یا کتاب سنه احادیث یادی یاد می‌کنن خلاص اسم کتاب شده نمی‌خواست اسم کتابشون میذاره اس سنه اون سنتی هست که در تضاد اون صحابات و شبهات یک شخص را متمثل به قرآن و سنت میکنه. اصول سنتی که باید ما باش قایبند باشیم اون اصول که رسولا صلی الله علیه و سلم توصیه کرده ما با اون چنگ بزنیم. ما با اون بچسپیم اصول سنتی که ما باید بچسپیم داشت با عنوان اصلی جلو با خودمون قرار بدیم که پامون نلغزه که در شهبات و شبهات نیفید بس این گواب انگه هست در منزلتش در مکانتش در جایگاهش زیاد من نمیکنم براتون اینجا نقل بکنم کل اون حرفا و سخنایی که برای امام احمد الفحل الله گفته شده. امام احمد قاضیون میتونه ازش مثلا معمون برای مناظره کردن با کسانی که مخالف با صنعت نبوی بودن کسانی که مخالف با حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند مثلا نیازی اشخاصی که بیاد با بیان با امام احمد رحمه الله مناظر بکنه. امام تا جایی که سعی و تلاش, تلاش داره داره نه جوابش نمیده مثلا شخص میاد درباره کلام خدا که آیا مخلوق هست و یا مخلوق نیست میاد مثلا یک کسی رو به اسم رحمان معتزلی میادن از اسباب و صلیبنا عطاء خدا الرحمن نحاد مناظره بکنه شخص میاد اون شخص میاد استدلال میکنه بر این که قرآن مخلوقه و انشاءالله بحثش رو جزء نموس حالا استدلال میکنه به فرموده خداون الله خالق و كل شئی همه چیز را آخری ده قرآنم شئیه چون قرآن شئیه و خدا با خالق همه چیز را هست پس در ندیل قرآنم مخلوقه بعد امام احمد از قرآن جوابش میده قرآن رو با قرآن جواب میده بیه می کل در قرآن دلالت بر شمول نمیده قرآن در قرآن گفته تدمرو کل شئیم به امر ربی هم خدا با که بعد. کامه دو تا گرسون اکنون فرستاد یا اون بعدی که فرستاد همه چیز را نابود کرد بعد خداوند بعد اون میگه تا صبح لا یو را بعد از اینکه بیدار شدن خونه سر جاشون بود میگه نکفت دمرو کل چیز همه چیز را نابود کرد نابود میکنه بعدی فرستادنی که همه چیز نابود بکنه خب پس چرا خونه هاشون سالمه میاد همه محمد رحمت الله اینکه جوابش میده یک شخص مطمئنی در باعث میشود یعنی مجرد این که قرآن را حفظ بکنه حدیث را حفظ بکنه فهم ها را داشته باشه نبود بلکه فقیح بود فقیم بود چخص آقبی چنانچه ابن معین و دیگران از امه گفتن شخص آقبی بود کلام خدا را تحقل کرده بود فهمیده بود و میدونید که قرآن که به عنوان کلام خدا هست خداوند چی میخواد با این آیات به بشریت بگیر از مناظرش نمیخوام حرف بزنم امام احمد رحمه الله کافی هست که از خودش کتابی به اسم مصند به جا گذاشت کتابی که فرزندش را کنار را خودش گذاشت و املا گفت به امام احمد فرزندش عبدالله و دیگران از اون کتاب مصندش کتاب مصندی که خود امام احمد رحمه الله میگه از 750 هزار حدیث این کتاب را براتون احادیث جمع کردن از 750 هزار حدیث 28000 هزار اندی حدیث در کتاب مصنف امام احمد میاد این احادیث رو جمع میکنه و برای ما بنوانی گنگی ها میکنه. شما کم پیدا میکنید حدیثی در بخاری در مسلم سنن ابی داود سنن ترمزی سنن ابن ماجه کم پیدا میکنید کتابی در کتاب سنن نسائی در این سنن عربه در صحیحه این کم بیدا میگونی حدیثی اونجا باشه در مصد محمد نباشه دل احادیسی که در کتب سته هست در مصد محمد هست امام احمد شیخ بخاریه امام احمد شیخ مسلمه چاگردانی که از خودش به جا گذاشت کم نمیلن ابو داوود، و علی بن مدینی و نمیلنم ابو زرعی رازی و تحتانی که بودن ابو حاتم رازی اینو همه جزه کوخا به این کوخای تنجیری ای اهل سنت که دست به دست همدیگه داده بودن مثل یک ستر جلوب شبهات اصداده بودن جلوب مغرضین ایجاد بودن جلوب دروغوار ایجاد بودن نمی داشتن کسی بر الله صلی الله علیه وسلم دروغی ببنده مثل زنجیر دست به دست همدیگه داده بودن مردم را با احادث رسولا امتحان می‌کردند که شخص خونی هست یا نیست متفصد که به سنت هست یا نیست در حدیث رسول الله صلی اللہ علیه یا نمی کنه بله مینش هستان می گفتم هلا بنا نختاب ساعه بشینیم غیبت بکنیم یک ساعت بشینیم برای چی برای ای که دین رسول الله صلی الله علیه وسلم حبز بشه دیم نبا بکنیم که اشتباه می کنه که اشتباه نمی که کسی نیاد به امت حدیث دروغی رو قالب بکنه تو کسی نیاد ب حدیث جعلی رو در امت بیاره اشتباهی در حدیث بیاد رخ بده و بعد مذهب فکر بکنن درسته و بعد بعد به اون عمل بکنن بله کتاب‌های های جرح تعدیل رو نلشدن امام آجوری امام ابو داود کتاباتی دارن در بحث جرح تعدیل در بحث شناخت رضاد از سوالاتی که پرزن از محمد سوالات سآلات آجوری سوالات ابو داود احمد و محمد اینا کتابات سوالات. مستری از مسادر ما در تشریف راویانه امام احمد رفته ده ها هزار تن کسانی که سخنگو بودن حدیث های مردم میگفتن امام احمد طلب اونها زانو زده برای نوشتن حدیث احادیثشون رو مینوشته و فقط مقایسه میکرده با دیگر محدثین که ببین که بیدیند که این محدث راست میگه راست نمیگه مخالفت میکنه با دیگران نمیکنه. آیا در حافظه خودش قلیه هست یا قوی نیست؟ اینها ترازوه های ما هستند که دی مستر تنها مستری از مسادرمونه در تشخیص رابیان در شناخت احادیث درست از نادرست در شناخت رابیان رابیان ضعیف و مجروح از رابیان سقاط پس اینها کسانی بودن که خوبها و بدها و ولیها را برامون نه چه کسانی خوب بودن چه کسانی بد بودن چه حدیث خوب بود، چه حدیث خوب نبود اینها نتونه احمد بن حمبل گفتم زندیری بودن هست ائمه حدیث ابو الزری رازی ابن أبي حاتم ابو حاتم رازی عبدالرحمن الرحمن بن المهدي حيان بن معین علي بن مدینی، بخاری، مسلم نه ائمه جرقه تعلیق بودن ائمه بودن که امدا حدیث صحیح را از سقیم جدا کردن احادیث درست و ندرست برای ما گفتن راویانی که میشه بهشم اعتماد بکنیم از راویانی که نمیشه بهشون اعتماد بکنیم را به همون گفتن زحمت کشتن برای ما وقتشون و صحات سلامتی خودشون و همه چیز را در و خدمت به دین را کسانی بودن که همه دین رو داشتن کسانی بودند که حب دین رو داشتن حب احادیث رسول الله, الله داشتن. نمی داشتن یک کسی بیاد یک خلط و اشتباهی بیاد برای سبا صلیم نسبت بده حسن که امام محمد بن حنبل چنانچه فردن نشنق میکنه عبدالله میگه که پدرم بیش از یک میلون حدیث حفظ بود الف, الف حدیث بیش از یک میلون حدیث حفظ بود بله یک حدیث شاید با ده طریق و بیس طریق و شاید با صد طریق حفظ بود گفت امام محمد با نشستن پیش این و اون عالم بود که نش تشخیص بده کی داره اشتباه میکنه کی داره اشتباه نمیکنه اما احمد کتابایی که از خودش میگذاشته غیر از کتاب مستن کتاب دیگری هم هست مثل کتاب از زهد کتاب الورع کتاب تضائل از کتاب های دیگری هم هست که احمد نوشته کتاب السنه که الان اصول السنه که الان داریم میکنین یا کتاب الرد على الجهمیه کتابی که در مسائل اعتقادی نمیشه در رد بر جهمی ها امام الله أهل الدنيا نبود أهل المال نبود دون بالمال نبود كثير من أشخاص التماس بكادنا دماء محمد كي مالي لابد بره انتولو هديه را قبول بكونا بلي أمام محمد انتنامي برزيت و دنیا براش همثل كببال پشه رسولة صلى الله عليه وسلم للدنیا لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناحة بعود اما منها كافر شربت ما اذا الدنیا بوار پشه يارزش داشت خداوند به خاطر بی دیوان ابم نمیداد پیش امام محمد بود دنیا بی بود یکی از فرزندانش ما از دربار بهش میومد تداعیایی حاضر نبود نانی که سه روز غذا نخورده بود یه روز بعد از مدتی میاد آردی را می سره که نان به فضل نانو توی خونه یکی از فرزندانش که توی دربار کار می کرد امام احمد بازو نمیشه که از اون نان بخوره تو میگه شاید از صدقاته. شاید شاید ورعش اجازه نمیدارس امام احمد استفی هدیه قبول بکنه فدقی قبول بکنه امام احمد بحمد الله گفتم اگر من بخان درباره باره براه و زهدش بگم هرشی بگم تم گفتم فقط بین گفته امام ابو درباره در باره زهدش میکنم. می کنم امام ابو داود بحمد الله بگت كانت مجالس احمد مجالس آخر لا یبتنو فيها ها شیعون من امر الدنیا با ما تو احمد ذکر دنیا تاز. که مدیالش ما محد مجلس آخر است بود فقط خدا بود هیچ امر دنیا دو درش فکر نمیکرد و روزی میگه ندیدم روزی ندیدم ها. هیچ وقت ندیدم که ما محمد درباره دنیا روخم دیگه. این کار خوبه این کار خوب نیست این کار خوبه این کار خوب نیست این, این کار پر درآمد این کار پر درآمد نیست. این کار بکنم پولش خوبه این کار بکنم پولش خوب نیست این درآمده خوبی این درآمد خوب نیست. ونجا برام کار گیر نمیاد اینجا برام کاه گیرم هیچ وقت در مجالس امام احمد یادی از دنیا نمیشد هیچ وقت خودشم اهل دنیا نبود روزی زبانش رو به دنیا آرزو نمی کرد هم به دنیا درش بیاد هم دنیا درش بیاد حب به دنیا درش بیاد بله حب به دنیا چیز بادیه دوست داشتن دنیا علاوه رو دنیا که کردن رو دنیا دوستی برای دنیا همه اینها مسمونه دنیا ملونه دنیا ملونه چی هست دنیا؟ ایلا ذکر الله یا ما و آنه ایلا ذکر خدا و اون چیزی خدا بان دوست داره او عالمان او متخلیمان یا کسی که دنبال علم یا کسی که علم مردم نیاموزه محمد براش دنیا ارزش شد یک بال پشم براش ارزش نداش چرا برای چیزی که بین ارزش شد بست خودشو حدر حدر بگه خلق بکنه براش ارز لا أريد أن يكون في الوقت قد في الدنيا وله لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس خلال شيء كما دارين دارشد الصخمين دار دار دار إلا إلا علم علم إن برهم إيش بحرية دارة نجد الدنيا داراقلات خلال شيء زائد ما مشغول شخصي إلا من شيء زائد من دارهم ميخرج شيء صدقات إصلاح المعرض علم وموزية علم وديرفتان إنها أكثر برماء ارزش داره برای ما توی تربنده اعمال من نوشته میشه در آخرت به دردم من نفره به ایلا ذکر ما مولا دنیا وقتی که رسول امیلی منعونه احساسنه ازش میکنه ذکر خدا بند به اون چیزی که خدا من دوست داره حالا میخواد سلیه رحم باشه میخواد ذکر خدا باشه میخواد نماز باشه میخواد صدقه باشه چون ما برای عبادت خدا خلق شدیم نه برای دنیا و ما خلق الجن شما را دريه عبادت کافري ني دنیا دنيا رسول الله علیه و عليه وسلم از ضعف امت تحضير به دنيا ياد ميكنه يوشك ان عليكم الامم كما تدا الاكل الى قصعتها امتها برشان ميخوان هم نوار بشن مثل کساني که سر يک سفره ميگذاشتن ميخوان به غزيه حمله بكنند بج صحابي اول من قله الذين يومئذ يا رسول الله ويما كان عندك فرمودخر لا بل انتم يومئذ كثير زیادی دلتن غذا که بودای سیم می‌سخوار خشکی که روی آب میمونه بعد از سیم شما هم همونطوری می‌ارزشیت ارزشی, ارزشی ندارید چرا؟ حال حب دنیا و خرافیت المد با حب دنیایی که در شما هم و از مادی که می‌دستید من شرط داشتم نباید سیم مسونه می‌شود خانم کار صبر ممحماد شکیباییش در مقابل شللاخویی که می‌خوره اگر بخوام دشیواد بکنیم بازم حالش بیم کم گفتیم امام محمد همراه محمد ابن نوح هم میشن در سر شطوری که ببرنشون پیش خلیفه یک شخص عرابی به اسم جابرد معامر با امام, احمد در در امام احمد در محمد در اون مسیری که غلو داندیر اندختم به تاسفوی امام محمد محمد ابن نوح برای این که تراف و قرم بین لقرار مدلوقه میبند نیشون که ببرنشون خلیفه بهت من شخص عربي لما محمد رومي كان ميليا هذا إنك وافد الناس فلا تك شبعا عليهم. قلت لهم رجاء معدمين شبع برأي معدم ما بعش. وإنك واقص الناس اليوم واقص معدوم باربعاري معدوم. دعهم بينهم كفايات أن تجيبهم إلى ما يدعونك إليه فكيف في يجيبه؟ يقال إنكم كغير معروف سبب الشعرا طابق اونها بشی حرفی کن و میخوان بزنن بزنی بزنی بعد مردم هم بشن و گناه مردم به گردن فتح مل اوزار رامی و گناه مردم به گردن تو بیفته بس امام احمد خودش بخش این سخن را میشنوه و کان کلمه من من قوه حسبی این سخن این عرابی سبب شد که که قدم امام احمد یه قدم هم واسختر بشه محکمدر بشه بعد از دا معتصم دا معمون دیگه داردم معتصم میان ست از خلافای بنی اقباس معتصم و بعد وقت اینا سه نفر سخت این مرا کتک میزدن حتی کسانی در این راه شهید شدن و کشه شدن در زده شد فقط اینکه اینجه میگفتن قرآن کلام خداس مخلوق نیست بخاطر حال بخاطر یک سخن بلکه این معتصم میاد دستوری لکه ما محمد زندون بشه و 28 ماه هم امام محمد زندون میشه امام احمد میگن امام المحنه هست امام سبره قهرمان صبره قهرمان سختی هاست بله تقدم بود چون چلق میخوره کودت میخوره تهدید به قتل میشه یه کلمه بگه میتونستم توریه بکنه بلی نگرد این صبر شکیبه امام احمد بود وقتی که از اما محمد روزی مت میشه میگن که تو سخت کردی تحمل کردی بعد خداوند دازم رو قبول کرد و میان متر استدراجش میکنن اما محمد ناراحت میشه وقتی که از بزرگیش و از استقامتش یاد میشه بعد میگه اخشایی کنه استدراج میگه میترسم که این استدراج باشه هر خصفتن شما استدراج باشه استدراج خداوند بنده رو رها بکنه در خوشیم که بنده بکنه کارش درسته دیگه میترسم که این و ستایش شما همون خوشی هایی هست که شاید خدا بر من نوشته که دلم رو خوش بکنم به حرفای شما و این حرفای شما استگرالی وشه از طرف خدا بند خوف پست از خدا ترسید که اگر این کسی مجلش هم میکنه ازش از خوبی یاد میکنه میترسید بنوانی خوشی هر انسانی هر کدوم از ما دوست داریم از ما مطر ستایش بشه امام محمد می که این مطر ستایش ها می ترسید که دریبانگیریش بشه روز قیامت امام محمد وقتی که شلاقش می زنن سهد می شه یک شنوارش باید می ترسید که شرک کش بشه از بست کوتکش می زدن امام محمد دستی بلند می کنم یا رویات المستقیدی یا العالمین ان کلتا تعلم علمو قائم لکه بحق فلات از تکلیار اوه او, بنده بنده او را تشنه کن پروردگار را دعا میکنه و به قدران پناه میبره که پروردگار بنده در بندهی خوبه دودم پروردگار را او را را افتس کنه ولی امام احمد گفتم با این همه کتاکا با شبلاقا با میخوره در بحثت مرگ میشینه بعد از اینی که امام احمد عمرش را به افتاد و شهار سال یا افتاد و هفتاد سال راشید در طلب علمی نشینه و در دعبت مردم و در تعلیم مردم امام محمد به اون هایی که دیده بود در میگشید در بسر مرگ از بس روزه میگرد از دخل قیام و تحجب میخون گوشش بردنش هستیده بود امام محمد اهل تحجب بود اهل قیام بود اهل خدا بود امام نشستی بودن از امام احمد وقتی که از بودند از درد می‌کشید آه می‌کشید مثلا وقتی که درد میکشه اش آه میگه بعد یه فیلمی از امام احمد میگه امام امام الطاووس این آه گفتن را کراهت میشه مرده میگه بعد از اون هیچ آه و ناله هم نگرد تا ناله هم نمی از بس درد می‌تونه درد می‌دیدید آهی را می‌گه از ناله اش ازش بیرو می اومد میگه بعد از اون که اون سخن از شنید که تراحت میشه وردش و ناله گفتن در درد دیگه بعد از اون امام محمد ثبت میکنه تحمل میکنه و حتی صدای دردش هم از دهانش بیرون نمیجدی اما آهش از دهانش بیرون نمیاد دل بختن از سیرتش هر چکل من بگم سمید فقط از یک جنبه علمی یک علمیش امام محمد میترسی که رسول خانم را به دو موضوع قاتمه دیدن. امام محمد می‌تایید که کسی در شک و شبهه این کتاب رو گفتم اصول سنن رو نوشتم که در شبهات نیوفته در مراد شبهات نیوفته امام احمد میگه ما اعلم الناس زمان احوج منهم في طلب الحديث من هذا زمان میگه زمانی نمیدونم که احتیاج و حاجتشون به حدیث شدیدتر از این زمان باشه سبحان الله امام احمد 1200 سال قبل میگه احتیاجشون به حدیث خیلی که نکنم محتاج از این دوره دیگه دورانی باشه کفتن ولي قال ظهرت البدن به تحساد آران زورت موشم زبود بیدون می کنم لم یکن عمده سنه او قال حدیث وقع فیها ادر سنت نداشت باشی متمسکه به سنت نباشی دنبال سنت نباشی دنبال حديثه به صلی الله علیه وسلم نباشی فاتن می لغزه و شما در شبهات میفتید. افتید بس انسان باید صحربله راه این بزرگان باشه همون تو دنبال حدیث رسول الله صلی الله بودن همون تو اینها متمسک به و سنت بودن باید در احراب راه اینها باشیم خریب 4 تا و 4 صحبت نخوریم خریب سخن شیرین نخوریم فلان داعیه فلان واعظ فلان شخص فلان کتاب میان میزنم برامون خریب 4 حدیث الروحین خریب 4 سخن شیرین دلشین نخوریم، بله بر دل خیلی چیزها میریشینه بله قرار بر این نیست که هرچه بر دل باشه بر دل شیرین میریشینه فردا روز قیامت هم برای اون شیرینی به حساب میاد خیلی از شیرینی ها هستن که از مال حرام هم. و بعدها باید روز قیامت و تابان اون تلخیل اون شیرینی رو باید تصویدیم بله هر حرام شیرینی نیست چه از در این دنیا شیرین باشه ولی در اون آخرت و تابان اون شیرینی رو باید تسبیدیم بدیم. باید باشیم از روزی به ما محمد بن حمبه در باره حالت محاسبی گفتن گفتم کنارش خیلی بنشینه حسنی می نشینه خیلی, خیلی سخن شیرینه غیر ممکنه که کنارش بنشینی عشقی از ششانت جاری نشه کسی هست که انسان را به خدا رو می کنه کسی هست که خوف خدا رو در می اما محمد اون شخصی که پیشش میگه که, که من را با خودت میبری که من بنشینم اونجا و ببینم این شخص چی میگه میگه با اما محمدم بردم ام اون شخص میگه نزد اون شخص که فخنش رو بشنم میگه پشت ستونی اما محمد نشخص میگه اون شخص نشخص باید نشسته نشست آمیزی سرش رو با این انداخت حالت محاسبی هرکی با سخنی نگفت قصه بود قصه میگفت مردم رو به خدا نزیم میکرد با قصه گفتهش میگه ما شخص میگه بعد از نماز عشق که شد حالت محاسبی شروع به سخن گفتن گفت شروع به سخن گفت و سخن میگفت شروع به هر زدن کرد بعد هر کش که تمام شد هر کم دیدم امام محمد اشکت شخص میشه. بعد دیگه یا به عبدالله چی خیلی سمعت؟ این سخنی قال ما سمعت کلاما احترام من چینی سخنی شیوه ایتا لا نشیده بودم صاحب نرو چرا؟ قفتی قال لان هادا الکلام الذي قاله، لم یکن علیه هدا اهل سنه فی ممضا این روشی که این در سخن گفتن روح روش قدامامون سلافمون نبود راهر به اهل سنت تمسک به احادیث رسول الله صلی الله عليه و آله السكب به اصطلاح و گفته های این و این ما خودوی ما رسول الله صلی الله عليه و سلم بعد که بعده اون صحابه اش به ثبوری خودمان رسول الله اسوه حسنه بروش شما رسول الله ره رو راه, راه, راه, راه, راه, راه صحابه را گرفتن و پیروه صحابه بودن فا این آمن و نسی ما آمنتون بیهی فقره فدو اگر ایمان وردن کسانی که بعد اصلا مثل شما یک کسانی ایمان وردن بدون امان که هدایت شده هستند. صبح اصلا اینجا کسان میدم خاف نمیدم انشاءالله دهدر تسلاحات می کنیم باز دوباره شروع می از خود کتاب کندن از کتاب می کنیم اون چیزی که این صدی اللہ شرکت و زیشنید سبحانکاللہ و حمدیل صلی اللہ علی محمد لیم و علی محمد